فصل یازده هنوز دو ماه از این ازدواج نگذشته نزدیک بود زندگی زناشویان ها به هم بخورد آرلیانو سگوندو برای اینکه کدورتی را که در قلب و روح پترکوتس به وجود آمده بود برطرف کند لباس ملکه زیبایی ماداگاسکار را به او پوشاند و از او عکس گرفت اما وقتی این خبر به گوش فرناندو رسید و عکس را دید به هیچگونه خداحافظی لوازم عروسیش را جمع کرد چمدانهایش را بست از ماکندو رفت. آرلیان سگندو در میانه جاده طالاب خود را به او رساند و پس از التماس و وعده های فراوان رازیش کرد به خانه برگردد و خودش هم از معشوقش دست کشید. پترکوتس که از قدرت و مهارت خود در عشق ورزی خبر داشت نگران نشد. او از آرلیان سگوندو یک مرد ساخته بود او بود که آرلیان سگوندو را وقتی پسر ای بود و در اثر خواندن نوشته های ملکیادس خیالاتی شده بود از آن اتاق عجیب و غریب بیرون کشید و با واقعیت های زندگی و گرمای عشق آشنا کرد این طبیعت آرلیان سگوندو بود که او را به سوی انزوا سوق می داد پترکوتس او را وارد جامعه کرد و به شخصیتی متفاوت از قبل تبدیلش کرد شخصیتی با روحیه و آماده پیش رفت. از او مردی با نشات و ولخرج و عیاش ساخته بود او حالا همان مردی بود که پترکوتس از زمان بلوغ در رویاهایش میدید. می دید آریان سگندو مثل همه مردم ازدواج کرده بود اما جرأت نکرد این خبر را به گوش پترکوتس برساند و در نتیجه رفتاری بچگانه در پیش گرفت مدام بهانه می کرد عصبانی میشد بی دلیل به لجبازی میافتاد دائم دنبال بهانه جویی بود و میخواست پتروکوتس را مجبور به جدایی کند یک روز وقتی اورلیان سگندو باز هم بهانه آورد و او را ناعادلانه سرزنش کرد این بار از کوره در رفت و گفت خودت بهتر میدونی همه این کارات فقط یه معنی داره تو میخوای با ملکه ازدواج کنی آرلیان سگندو شرمنده شد و وانمود کرد که ندانسته و بیخود عصبانی شده. بعد پترکوتس را سرزنش کرد و گفت که همه چیز را عوضی می فهمد و دیگر به دیدن او نرفت. پترکوتس بر خلاف خشم شدید درونیش آرامش خود را از دست نداد. همچنان منتظر مانده بود تا اینکه صدای نوای موسیقی جشن و آتشبازی را شنید انگار که این هم یکی از همان دیوانگی های آرلیان و سگنده بود. او در جواب کسانی که دلشان به حال او سوخته بود گفت نرهت نباشین و لبخند زد. به زن همسایه که برای دلداری او دو عدد شم آورده بود تا آنها را دو طرف عکس آرلیان و سگنده بگذارد و روشنشان کند گفت ه. نگران نباش حتی ملکه ها هم کلفتی منو می کنن. و به دنبالش با لحن آرام و معماغونه ادامه داد تنها شمی که اونو پیش من بر میگردونه. همیشه روشنه همانطور که او پیشبینی کرده بود به محض که ماه اصل تازه داماد تمام شد او دوباره به خانه پترکوتس برگشت باز هم دوستان سابق خود را به آنجا آورد و مهمانی را انداخت این بار اکاس سیاری را هم دعوت کرده بود و همچنین شنل خونالود پوست قاغمی را که ملکه در شب کارنوال جشن بر تن داشت همراه خود آورده بود. آن را به تن پترکوتس پوشاند و به عنوان ملکه مادمول عمر مادگاسکار تاج را بر سرش گذاشت. بعد از او عکس گرفت و نسخه های آن را میان دوستانش پخش کرد. پیترکوتس هم در حالی که خود را به آن راه زده و در این بازی بچگانه پا به پای او جلو می آمد در باتن دلش برای آرلیان و سوخت و فکر کرد که او حتما خیلی ترسیده که به فکر این آشتی آن هم با چنین تشریفاتی افتاده در ساعت هفت شب در حالی که هنوز هم لباس ملک تنش بود او را به بستر خود راه داد هنوز دو ماه از ازدواج آرلیان سگندو و فرناندو نگذشته بود که پتراکوتس با شعف فراوان فهمید که بستر زناشویانها آنطور که باید گرم نیست. احساس کرد که انتقامش را از آن زن گرفته. دو روز گذشته بود و آرلیان سگندو دیگر جرأت نکرد پیش تازه عروسش برگردد. او واسطه ای فرستاد تا ترتیب جدایی آنها را بدهد. تازه در این زمان بود که پتراکوتس فهمید باید صبر و تحمل بیشتری به خرج دهد چرا که متوجه شده بود آرولیان سگندو برای حفظ ظاهر و آبرو هم که شده حاضر است خود را قربانی کند. ناراحت نشد و سعی کرد آرامش خودش را حفظ کند. شرایط را با از خود گذشتگی برای او آسان کرد و این رفتارش موجب شد تا نظر مردم نسبت به او تغییر کند و دلشان به حال او بسوزد. در میان تنها یادگاری که از آرلیان و سگوندو پیش پتروکتس باقی ماند، یک جفت پوتین ورنی بود که طبق گفته خود او، همان هایی بودند که دوست داشت پس از مرگش در تابوت پایش باشد. او آنها را لای پارچه پیچید و ته صندوقی نگه داشت و خود را برای انتظاری معیوسانه آماده کرد. از روی ناچاری به خود گفت: به خاطر پوشیدن این چکمه هم که شده باشه، تیریو شوت مجبور برگرده برخلاف تصور پترکوتس زمان انتظارش چندان نپایید آرلیونو سگوندو از همان شب اول ازدواج فهمیده بود خیلی زودتر از آن که مجبور باشد چکمه های ورنی را بپا کند باید به خانه پترکوتس برگردد از سوی دیگر فرناندو هم زنی بود بی‌نوا و گم شده در میان نامردمی‌های این جهان او در شهری دور افتاده و در فاصله هزار کیلومتری ماکوندو به دنیا آمده بود. در شهری بزرگ شده بود که هنوز هم در شبهای تاریکش صدای کالسکی های حامل فرمانداران از روی سنگفرش خیابان به گوش می رسید. هر روز ساعت شش بعد از ظهر از دو برج ناقوس صدای عزاداری بلند می‌شد و در خانه اربابی آنها که کف محوته آن را مانند گورستانها با لوح های سنگی فرش کرده بودند هرگز نور آفتاب تابیده نمیشد. هوا در درختان سر و حیات در تجملات رنگ رو رفته اتاخهای خواب و در خیابانهای بین باغچه‌ها مرده بود فرناندا تا رسیدن به سن بلوغ هیچ اطلاعی از دنیای بیرون نداشت جز اینکه هر روز بعد از ظهر صدای دلگیر پیانویی را در خانه یکی از همسایه ها این خانه توسط کسی اداره میشد شد که انگار سالهای سال بود علاقی به خواب بعد از ظهر نداشت. فرنانده در اتاق مادر مریض خود که چهرش زیر نور پنجره های خاک گرفته زرد شده بود می نشست و به نوای موسیقی گوش میداد و به بدبختی و محرومیت خودش فکر میکرد. او با خود فکر کرد چون این نواهای موسیقی در دنیا وجود دارد ولی من، در خانه ماتم و عذا گرفتم و دارم میپوسم مادرش که در اثر تب ساعت پنج عصر عرق میریخت برای او از گذشته ها میگفت وقتی که فرناندا دختر بچه بود زن زیبای سفید پوشی را دیده بود که از وسط باخچه ها عبور کرد و به طرف کلیسا رفت چیزی که موجب شگفتیش شد این بود که آن زن کاملا شبیه خودش بود انگار که خودش را در بیست سال بعد میدید مادرش به او گفت مادر بزرگت ملکی اینجا بود و بعد در حالی که صرف امانش را بریده بود ادامه داد وقتی داشتی شاخ گل میچید؟ از عطر اون گل مرد سالها بعد که فرناندا به تدریج متوجه شد که درست شبیه مادر بزرگش شده در رؤیای دوران کودکیش دوچار شک و تردید شد اما مادرش او را سرزنش کرد و گفت ما خیلی ثروتمند و قدرتمند هستیم تو حتما یه روزی ملکه میشی او که کنار میزی دراز با روپوش ملیل دوزی شده نشسته بود و با کارد و چنگال و در ظروف نقره‌ای. مشغول خوردن تنقلات و کلوچه بود این حرف مادرش را باور کرد. او تا روز ازدواجش دائم در رویای زیستن در کاخ افسانه سلطنتی به سر میبرد. در صورتی که در طی این مدت آنها از هستی ساقط شده بودند. پدرش دون فرناندو برای تهیه جهیزی او مجبور شده بود خانهشان را گرو بگذارد. این کارها برای خودنمایی یا اقفال نبود بلکه آنها دختر خودشان را بار آورده بودند. فرناندا از زمانی که خودش را شناخت و خوب و بد را از هم تشخیص داد به یاد داشت که در یک لگن طلایی که علامت خانوادگیشان آن حک شده بود رفع حاجت می تنها دوازده سال داشت که برای نخستین بار خانه را ترک کرد. سوار بر کالسکهشان شد تا فاصله دو چهار راه را طی کند و به یک برود وقتی دختران همکلاسی و همسن و سالش دیدند که او جدا از آنها و به تنهایی روی یک صندلی با پشتی بلند نشسته و حتی در زنگ تفریح هم با آنها صحبت نمی کند متعجب شدند راهبه ها در مقابل کنجکاوی ها توضیح دادند و گفتند اون با شماها فرق داره اون یه روزی ملکه میشه. همکلاسی های او این حرفها را باور میکردند چرا که او را زیبا ترین و شاخص ترین دختر میدیدند. دیدند. فرناندا بعد از هشت سال تحصیل یاد گرفته بود به زبان لاتین شعر بنویسد، تراوسن بنوازد، با جنتلمنها از شکار حرف بزند و با اسقفها از مذهب، با حاکمان درباره سیاست و در خداوند با پاپ وارد گفتگو شود. او به خانه پدریش برگشت و خود را با ساختن تاج گل برای مرده ها سرگرن کرد و از کنار همین کار خرج تحصیلش را هم تأمین میکرد. از طرفی این کار را نوعی تحقیر به حساب می آورد و حالا از آن همه جاه و جلال و ثروت تنها مبلشان باقی مانده بود که برایشان ضروری بود. شمدانی ها و ظروف نقره و رومیزیهایشان همه فروخته شده بود و خرج حزینه تحصیل و زندگیش شده بود مادرش به تب نوبه مبتلا بود پدرش در لباس سیاهی با یقه بلند و ساعت جیبیش که زنجیر طلایی داشت هر دوشنبه یک سکه نغرهی به او میداد تا خرج خانه کند بعد تاج گلهایی را که دخترش درست کرده بود از خانه بیرون می برد تا در مراسم سوگواری بفروشد دون فرناندو بیشتر اوقات خود را در اتاق مطالعه سپری می کرد و مواقعی هم که از خانه بیرون می رفت زود برمیگشت تا با هم دعاهایی را که حفظ بودند بخوانند. فرناندو هیچ دوستی نداشت هرگز حرفی از جنگ نشنیده بود جنگی که سراسر مملکت را به خاک و خون می کشید. تا ساعت سه بعد از ظهر درس پیانو را ادامه می داد و تصور ملکه شدن را به تدریج از ذهنش دور میکرد تا اینکه یک روز صدای دو ضربه محکم به در خانه را شنید. در را که باز کرد در مقابل خود افسر جوان شیک پوشی را دید که شق و رق ایستاده بود و رفتار خشکی داشت. روی سیناش یک مدال طلا بود. یک خراشیدگی هم روی صورتش داشت. افسر جوان وقتی وارد خانهشان شد، برای مدتی در اتاق مطالعه با پدر او خلوت کرد بعد پس از حدود دو ساعت پدرش به اتاق خیاطی آمد و گفت نوازم تو جمع کن قرار به یه سفر دور بری به این ترتیب بود که او را به ماکندو بردند تنها در طی یک روز فرناندا بار سنگینی از حقایق تلخی را مانند سیلی محکمی توی صورت خود حس کرد حقایقی که پدر و مادرش سالها از او مخفی کرده بودند وقتی به خانه برگشت خود را در اتاقش زندانی کرد و ساعتها گریست او به التماسهای دون فرناندو اعتنایی نمی کرد و قسم خورد که دیگر تا پایان عمر پایش را از اتاق بیرون نگذارد اما آرلیانو سگوندو برای بردن او به دنبالش آمد زمانی که در ماکوندو گرفتار آن ماجرا شده بود برای اینکه اسم و رسم واقعیش برملا نشود به آرلیانو سگوندو دروغ گفته بود و حالا شرمنده بود آرلیان سگوندو تنها نشانه هایی که برای یافتن او در دست داشت یکی لهجه غلیظ او بود که خاص مردمان مناطق کوهستان بود و دوم های گلی که او برای مراسم تدفین می ساخت. پس بی اینکه وقت را هدر دهد به دنبال او گشت درست با همون عزم راسخی که خوزارکادی و بویندیا کوه ها را در نوردیده بود و سرانجام ماکند را پای گزاری کرده بود یا همچون آن اراده راستینی که سرهنگ آرلیان بویندیا داشت که با قرور کورکورانش دست به آن همه جنگ های زده بود یا مانند ارسلا که با سرسختی جنونآمیزی به دنبال حفظ ارزش های خانوادگیشون بود حالا او هم بدون لحظه توقف و رنگ به دنبال فرنانده آمده بود. زمانی که از مردم سراغش را میگرفت و میپرسید در کجا حلقه های گل برای مراسم تدفین میفروشند او را خانه به خانه میگرداندند تا خودش بهترین آنها را انتخاب کند و هر بار هم که میپرسید در کجا می‌توان زیباترین زن دنیا را دید همه زنها دختران خود را پیش و او میآوردند اورلیان سکوندو سرگردان شده بود و دیگر نمیدانست چگونه و در کجا باید دنبال او بگردد. گرفتار یأس و هرمان شده بود. در طی جستجوهایش روزی از دشت عبور کرد که خاک زرد رنگی داشت. دشت عجیبی که انگار افکار و های آدمی را منعکس می‌کرد. بعد از هفته‌ها سرگردانی وارد شهری ناشناس شد. و دید که ناقوس کلیسه های آن نوای مرگ را به صدا درآوردند. او هرگز آن شهر را ندیده بود و از کسی هم چیزی در آن نشنیده بود اما به محض ورود شهر را شناخت اولین چیزی که دید دیوارهای روبه ویرانی بود و درهای موریان خورده خانه ها و کوبه های زنگ زده آنها همانطور که کوچه به کوچه میگشت و به جستجو ادامه میداد به دری پوسیده رسید و تابلوی را بالای دردید که در اثر باران رنگش را از دست داده بود روی آن نوشته شده بود حلقه و تاج گل برای مراسم تدفین فروخته می شود صبح زود سردی فرناندا خانه را به مادر روحانی سپرده بود و آماده حرکت می شد راهبه های فرصت چندانی برای آماده کردن جهیزی او نداشتند و با عجله های نقره و سرویس نقره و لگن طلا را به همراه لوازم بیمصرف دیگری که از دویست سال پیش باقی مانده بود جمع کردند و درون شش صندوق قرار دادند و آماده حرکت شدند. دون فرناندو دعوت آنها را برای همراهی عروس و داماد رد کرد و قول داد که بعد از انجام کارهای عقب‌مانده خود سری به آنها بزند. او دخترش را با دعای خیر بدرقی کرد و طبق معمول به اتاق مطالعه برگشت و اندوهگین از رفتن او شروع به نوشتن نامه برای دخترش کرد. نامه هایی که اولین ارتباط مکاتبهی میان فرناندا و پدرش به حساب می آمد. این گونه بود که او به خانه بخت قدم گذاشت و این برای او حکم تولدی دوباره را داشت. اما، برای آرلیان و سگوندو خوشبختی به پایان رسیده بود. در این مسافرت فرناندو سالنامهی ظریف با های کوچک طلایی همراه خود داشت که مشاور اخلاقی او بود. در این تقویم روزهایی را که نباید با شوهرش نزدیکی کند، با جوهر ارغوانی رنگ علامت زده بود. به این ترتیب، با در نظر گرفتن هفتههای مقدس، روزهای یکشنبه روزهای مقدس اجباری، اولین جمعه هر ماه، روزهای خلوتگزینی، روزهای قربانی و روزهای عادت ماهانه تنها چهل و دو روز در طول یک سال باقی می ماند. آن روزهای ممنوعه با خطوطی همچون تارنگ کبوت ارقوانی رنگ مشخص شده بودند. آرلیون سگندو با این خوشباوری که گذر زمان خطوط تارنگ را را از میان بر خواهد داشت روز جشن عروسی را بیش از حد کش داد ارسولا دیگر از بیرون انداختن بطری های خالی شامپاین که از زیر دست و پا جمعشان می کرد خسته شده بود او میدید که آن دو هر کدام در ساعات مختلفی می خوابند و آن هم در دو اتاق جداگانه. در حالی که مراسم جشن همراه با آتشبازی و قربانی کردن گاو و گوسفند ادامه داشت ارسولا با دیدن خطوط تارنگ کبوتی تقویم ناگهان خاطراتی دور از ذهنش عبور کرد و یاد تنکه افت خودش افتاد و شک کرد که نکند فرناندا هم یکی از همانها را به پا دارد با خود فکر کرد اگر اینطور باشد دیر یازود لطیفه هایی در میان مردم ساخته خواهد شد و در نهایت به فاجعه خواهد انجامید اما فرناندا پیش او اعتراف کرد که فقط دو هفته صبر خواهد کرد و از آن به بعد در کنار شوهرش می خواهد چون این هم شد یعنی بعد از دو هفته فرناندا با تسلیمی مخصوص به حیوان در حال قربانی شدن و با چشمان زیبایی که به چشمان جانوری وحشت زده شبیه بود و با موهای بلند مسیرنگ در را به روی شوهرش باز کرد بعد بر روی تخت خوابی بزرگ دراز کشید طوری که موهایش روی بالش پخش شده بود آرلیان سگندو چشمش به زیباترین زن روی زمین افتاد. او چنان شگفت زده شد که لحظه طول کشید تا متوجه شود که فرناندا لباس حریر سفید رنگ بلندی به تن دارد که تا مچ پاهایش را پوشانده و آستین‌های بلند آن تا مچ دست‌های او پایین آمده و در پایین شکم سوراخ بزرگ مدوری وجود دارد که دور تا دورش به دقت دوخته شده. او بی اختیار با صدای بلند خندید و گفت <تصفيق> این مسخرترین چیزیه که توی همه عمرم دیدم با این حساب من با یه راهبه ازدواج کردم صدای او در سراسر خانه پیچید و به گوش همه رسید آرلیان سگندو یک ماه بعد از شب عروسیشان چون موفق نشد فرناندا را راضی کند تا لباس خوابش را از در بیاورد از روی لجبازی پیش پتراکوتس برگشت و از او با آن لباس ملکی ماداگاسکار عکس گرفت. همین عکس باعث شد فرنانده قهر کند و به خانه پدریش برگردد. بعدها آردیان سگندو با اصرار فراوان او را قانع کرد که به خانه بازگردد. او هم بالاخره در مقابل التماس های شوهرش تسلیم شد و مطابق خواست او عمل کرد. اما نه انطور که شوهرش با هزار امید و آرزو به دنبالش به شهر سیدو ناغوس رفته بود آرلیانو سگوندو تنها چیزی که در او دید نوعی احساس دلتنگی عمیق بود بعدها کمی قبل از تولد اولین فرزندشان فرناندا در کمال ناباوری متوجه شد که شوهرش پنهانی به بستر پتراکوتس برگشته آرلیانو سگوندو هم در مقابل اعتراضهای او با لحن حق به جانب و با تلخی گفت آره، برگشتن پیشش، برگشتن به این خاطر که زاد و وولد دامهامو ادامه بدم آریانو مدتی وقت لازم داشت تا آن ماجرای عجیب ولی مسلح آمیز را به فرناندو حالی کند. وقتی موفق شد با مداره که انکار نپذیر جریان را به او بفهماند، فرناندو هم تنها قولی که از او گرفت این بود که طوری رفتار نکند که در بستر معشوقش سکته کند. به این ترتیب؟ بی این که مزاهم یک دیگر بشوند سه نفری به زندگی ادامه میدادند. آریان و سگندو به هر دوی آنها محبت میکرد. پترکوتس از پیروزی خود سرماست بود و فرناندا هم وانمود میکرد کرد که از هیچ چیز خبر ندارد. اما این پیمان پنهانی در عمل موفق از آب در نیامد. فرناندا نتوانست در دل خانواده شوهرش جا باز کند. رسول تلاش بیهوده میکرد کرد که فرنادا را وادار کند که دیگر آن لباس حریر یق چیندار را که باعث میشد همسایه ها حرفهایی را در گوشم بگویند به تن نکند او نتوانست فرنادا را قانع کند که به جای حاجت در آن لگن طلایی به دستشویی برود و در عوض لگن را به سرهنگ آرلیان بویندیا بفروشد تا آن را به چند ماهی کوچک طلایی تبدیل کند امارانتا از نحوه حرف زدن و از لحجه قلیز و او خوشش نمی آمد و از اینکه همیشه با زبان زرگری حرف می زد شکایت داشت او روزی با زبانی نامفهوم و گنگ و و ته چیزی به فرناندا گفت فرناندا هم در حالی که از آن تمسخور ناراحت شده بود میخواست بفهمد که امارانتا به او چه گفته امارانتا به زبان عادی جواب داد داشتن می گفتفتم تا از اونایی هستی که فکر میکنن از دماغ فیل افتادن از آن زمان به بعد آن دو با هم قطع رابطه کردند و با هم حرف نزدند. اگر مجبور می شدن چیزی به هم بگویند برای یکدیگر یادداشت میفرستادند. فرناندا بر خلاف برخورد های غیر دوستان از سوی خانواده شوهرش روحیه خود را رو از دست نداد و از وفاداری به رسوم نیاکانش دست نکشید. یکی از اقدامات اساسی او در آن خانه این بود که به عادت غذا خوردن در آشپزخانه پایان داد. او ساعت معینی را برای خوردن غذا تعیین کرد. آن هم با تشریفات کامل و بر سر یک میز بزرگ با روکش اطلسی و با ها و سرویس کامل نقره. اورسلا این اقدام او را عملی پیش پا افتاده و روزمره تلقی کرد. اما همین عمل ساده چنان فضای پرفشاری در خانه به وجود آورد که حتی خوزار کادیو و کم حرف را هم واداشت که قبل از همه صدای اعتراضش بلند شود. اما هر طور که بود این رسم بر اعضای خانواده تحمیل شد. همانطور که دعا خاندن قبل از غذا و شکرگزاری بعد از غذا تکلیف شده بود. این رسومات تازه توجه همسایه ها را جلب کرد. طولی نکشید شایعی در شهر پیچید که بو مانند مردم عادی سر میز غذاخوری نمی نشینند و قزوخوردنشان را به شکل عبادت درآوردند. سنتهای سنت های آمیز اورسولا که بیشتر مربوط به الهامات لحظه ای او بود در برابر خرافاتی که فرناندا آنها را از خانوادش به عرص برده بود شکست خورد. زمانی اورسولا یک کتاز میدان بود و عقاید و رسومات خود را در خانه می کرد اما ارسلا به تدریج اقتدار خود را از دست داده بود و همان رسومات محدودی هم که از قدیم مانده بود با از دست دادن بینایی و رسیدن کهولت او منسوخ شد از زمانی که فرناندا مدیریت خانه را در دست گرفت تنها او بود که سرنوشت خانواده را رقم می زد حرفه کیکپزی و فروش آبنبات های حیوانات را که سانتو سوفیا دل داد آن را براب اصرار ارسلا ادامه داده بود کار بی ارزشی تشخیص داد و آن را در شعن خاندان بو ندانست و برای همیشه تعطیلش کرد. در خانه را که از صبح سهر تا آخر شب یک سر باز می هنگام خواب بعد از ظهر می بست. آن هم با این بهانه که حرارت آفتاب نیم روز هوای اتاخها را خراب می کند. بعدش هم در هر وقت دیگری که لازم می‌دید آن را می‌بست تا آنکه آن در دیگر هیچ وقت باز نبود شاخه زیتون مقدس و قرص نانی که از زمان پیدایش ماکوندو بر سردر خان آویزان بود جای خود را به شمایل قلب مقدس مسیح داد سرهنگ اورلیان بوئندیا که متوجه آن تغییرات شده بود و پیامدهای آن را پیشبینی کرده بود گفت انگار داریم سری تو سرا در میاریم اگه همینجوری پیش بریم یه روزی دوباره با رژیم محافظ کار می جنگیم که این بار به جای اونای حکومت سلطنتی روی کار بیاریم در این میان فرناندو هوشیارانه فهمید که نباید با دوم شیر بازی کند سعی کرد سر راه او قرار نگیرد در دل از روح آزاده و از مقاومت او در برابر هر نوع نظم اجتماعی خوشش نمی آمد. از خوردن قهوه بدون شکر، رأس ساعت پنج صبح، از وضعیت نامرتب و به هم ریختی کارگاهش، از پتوی رنگ رو رفته و از اینکه وقت غروب روی سکوی کنار حیات می نشست بیزار بود. با این وجود متوجه بود که در مورد او باید با احتیاط عمل کند، چرا که مطمئن بود سرهنگ آرلیان و بو هرچند در اثر سالها اندوه و نامیدی به حیوانی میمانست که رام شده اما هنوز هم قادر است در اثر یک تقیان دوران پیری پایه های خانه را از جاد در بیاورد. هنگامی که شوهرش تصمیم گرفت نام جد خود را روی اولین پسرشان بگذارد به این دلیل که تنها یک سال از وصلت او با آن خانواده میگذشت جرأت نکرد مخالفت کند. اما وقتی اولین دخترشون به دنیا آمد، عقیده خود را با قاطعیت به آنها تحمیل کرد و نام مادر خود رناتا را روی او گذاشت. اورسولا تصمیم گرفته بود نام او رمدیوس باشد. بعد از جر و طولانی که تیان شوهرش فقط لبخندی زد و نقش میانجی را بازی کرد، بالاخره اسم دختر را رناتا رمدیوس گذاشتند. فرناندا او را تنها با نام مادرش رناتا صدا میزد اما بقیه اهل خانه و حتی مردم شهر او را ممه که مخفف رمدیوس بود صدا میزدند. در اوایل ازدواجشان فرناندو کمتر درباره خانواده خودش حرف میزد اما به تدریج به تعریف و تمجید از پدرش پرداخت و سر میز غذاخوری از او به عنوان موجودی استثنایی یاد کرد که مبرر از هر نوع کار بیهوده و بی است طوری که تقریبا به صورت یکی از قدیسین در آمده و سگوندو از نسبت دادن آن همه فضیلت به پدرزنش یکه خرد و به این فکر افتاد تا در ریاب همسرش لطیفه هایی را درست کند و او را به باد تمسخور بگیرد بقیه اهل خانه از اقدام او استقبال کردند حتی اورسولا هم که در این موارد خیلی حساس بود و همیشه مراقب بود که به نظم و ادب خانواده خدشهی وارد نشود نتوانست جلوی خود را بگیرد و با لحن ای گفت که پاپ بودن نبیره کوچولویش به این خاطر که نوه یک قدیس است و فرزند یک ملکه و یک سارق حیوانات تضمین شده است برخلاف آن کنایه ها بچه های فرناندا در این فکر خود راسخ بودند که پدر بزرگشان موجودی ای است که برایشان شعرهای مذهبی می با کریسمس همراه یک نامه هدایایی در بسته های بزرگی میفرستد که از در خانه به زحمت تو میآید. حقیقت این بود که آن هدیه ها ثروت خانوادگی او بود. با آن هدایا که از انواع تندیس های قدیسین در اندازه های طبیعی بود، مهراب و عبادتگاهی در اتاق خواب بچه ها ساختند. بعضی از تندیسها چشمان شبیه انسان و برخی هم، لباس فاخر ملیل دوزی شده به تن داشتند که زیباتر از هر لباسی بود که مردم ماکوندو تا آن زمان بر تن کرده بودند عظمت و شکوه قمنگیز آن قصر کوهن به مرور به خانه بواندیاها انتقال داده شده بود روزی آرلیان و سگندو گفت به درسن هم کل مغبره خونمادگیش رو برمون فرستاده فقط مونده سنگایی روی گورمون که اسممون روشون کنده شده باشه و یه دسته ازاداران سیاپوش. پوش. هرچند در هیچ هیچیک از هدیه های کریسمس حتی یک اسباب بازی هم برای بچه فرستاده نمی شد. اما با این حال همیشه چشم به راه رسیدن کریسمس بعدی باقی می ماند. هرچه که بود آن هدایای قدیمی و غیر قابل پیشبینی برای مدتی حال و هوای خانه را تغییر میداد. و تنوعی ای ایجاد میکرد. در دهمین ده کریسمس خزارکدیو چهارم، وقتی او داشت برای رفتن به مدرسه علوم دینی آماده میشد، جعبه بزرگ هدیه کریسمس زودتر از همیشه از راه رسید. جعبه را با دقت بسته و میخکبی کرده بودند و روی آن با حروف گوتیک نوشته شده بود. به نشانی بانوی بزرگوار، دونا فرناندو دلکارپی و بویندیا وقتی جعبه به اتاق بچه ها منتقل شد فرناندا مشغول خواندن کلمات روی جعبه شد بچه ها شتاب می تا آن را زودتر باز کنند طبق معمول با کمک پدرشان آرلیان و سگندو جعبه چوبی بزرگ را گشودند و خاکره محافظ داخل آن را خالی کردند صندوق سربی در آن بود که با قفل‌های مسی بسته شده بود. در حالی که بچه‌ها با بی‌صبری این پا, وان پا می می‌کردند و چشم به جابه دوخته بودند، آرلیانو سگوندو هشت قفل جعبه را باز کرد و چشمش به داخل آن افتاد. او حتی فرصت نکرد بچه‌ها را به عقب براند تا داخل جابه را نبینند. آه از نهادش برآمد. جسد دون فرناندو را در حالی که لباس سیاه رنگی به تن داشت و دست‌هایش را صلیبوار وار روی سینهش قرار داده بود درازکش در جه بدید آثار زخم روی پوست بدنش دیده میشد. در طول مدتی که از زمان مرگ سپری شده بود بدنش در حال متلاشی شدن بود و حباب های سفید رنگی روی تنش به وجود آمده بود که به مروارید شبیه بودند کمی پس از تولد رناتا رمدیوس که جشنی غیر مترقبه برای سرهنگ آرلیان بویندیا محسوب می شد، برپایی جشن دیگری به مناسبت سالگرد پیماننامه متارکه نرلاندیا از سوی دولت اعلام شد. تصمیم دولت چنان خارج از عرف اداری و سیاسی بود که سرهنگ آرلیانو را خشمگین کرد و الان علیه چنین اقدامی قد علم کرد. این برای اولین باره که کلمه سالگرد و میشنوم، ولی هر معنی هم که داشته باشه بوی نیرنگ میده کارگاه کوچک زرگری او از معمورین مخفی دولت پر شد معمورین سابقی که این بار به مراتب پیرتر و شکسته تر و کم ربتر شده بودند آن وکلای سیاه پوش که در زمانهای گذشته مانند کلاخهای سیاه اطراف او میچرخیدند بار دیگر برگشته بودند وقتی دید که آنها دوباره سرکله پیدا شده تا مانند سابق مانع بر پای جنگ شوند دیگر نتوانست تزویر و ریاشان را تحمل کند و دستور داد آنجا را ترک کنند و آرامش او را بر هم نزنند تاکید کرد که او دیگر آن قهرمان ملی که آنها ادعا می‌کنند و لقب پدر وطن را به او دادند نیست بلکه صنعتگری بدون خاطره است که تنها آرزویش این است که در فرتوتی، و در حال فراموشی و بدبختی در میان ماهی های کوچک تلائیش با زندگی ودا کند. چیزی که بیش از همه اوقات او را تلخ کرده بود حرفی بود که شخص رئیس جمهور گفته بود. او مایل بود به ماکندو بیاید و شخصا در جشن سالگرد شرکت کند و نشان لیاقت را با دستان خودش به او اعطا کند. سرهنگ اولیان بوئندا کلمه به کلمه و عین به عین ادای او را در و گفت که به شدت در انتظار آن روز خواهد ماند تا بتواند گلولهای بر پیشانی او بنشاند آن هم نه به عنوان پاداشی برای حکومت مستبدانه و اشتباهات تاریخی رژیم او بلکه به خاطر رعایت نکردن احترام پیرمردی که ضررش به هیچ کس نرسیده در نتیجه اینگونه گونه برخوردها و تهدیدها بود که رئیس جمهور در آخرین دقایق سفر خود را به ماکوند لغو کرد و نشان لیاقت را توسط نماینده ویژه خود ارسال کرد. سرهنگ جرینلدو مارکز در اثر فشار مقامات مجبور شده بود از بستر بیماری بیرون بیاید تا بتواند دوست و همرزم سابق خود را راضی به قبول نشان لیاقت کند. سرهنگ آرلیان بوندیا وقتی او را دید که روی صندلی گهوارهیش در میان بالشا نشسته و چهار مرد او را حمل می کنند به یاد پیروزی ها و شکست افتاد که در آنها با هم شریک بودند سرهنگ آرلیان و بوهندیا هیچ شک و تردیدی مطمئن بود که هم رزم سابقش این تلاش را برای ثابت کردن یک دلی خود نسبت به او انجام میداد. اما وقتی به نیت واقعی او پی برد به آن مردان دستور داد تا او را از کارگاهش بیرون ببرند و گفت افسوس که دیر فهمیدم اگه گذاشته بودم تیر بارونت کنن چه خدمت بزرگی بهت کرده بودم جشن پنجمین سالگرد پیمان نامه نرلاندیا در ماکندو برگزار شد و هیچ کدام از اعضای خانواده بویندیا در آن شرکت نکردند جشن بر حسب تصادف با هفته کارناوال مصادف شده بود کسی نتوانست این فکر را از سر سرهنگ آرلیان بوندیا بیرون بیاورد که دولت به عمد این جشن را به چون این روزی ماکول کرده تا او را تحقیر کند. جشت در خیابان مقابل خانه او برگزار شده بود که نام آن را به افتخار او خیابان سرهنگ بوئندیا گذاشته بودند. او تنها در کارگاهش نشسته بود و از همانجا صدای مارش نظامی و هورا کشیدن سربازان و صدای رژه آنها را میشنید تا جایی که میتوانست بعضی عبارتهای سخنرانی ایراد شده را هم بشنود. در اثر خشم ناشی از سستی و ناتوانی چشمانش خیس شد. برای نخستین بار پس از شکست تاریخیش تقریباً علیل مانده بود و دیگر توانایی دوران جوانیش را نداشت تا بلکه بتواند جنگ خونین جدیدی علیه رژیم خودکامه حاکم راه بیندازد و ریشه محافظه‌کاران را برای همیشه بخوش کند. غرق در ماتم و اعضای خودش بود و هنوز سر و صدای جشن خاموش نشده بود که ارسلا در کارگاه را کوبید. سرهنگ آرلیان بو فریاد زد. وزاهمم نشین. کار دارم. ارسلا با لحنی عادی پا فشاری کرد و گفت. در و باز کن. چیزی که میخوام بگم به جشن رفتی نداره. سرهنگ آرلیان و با اکراه از کنج و خود بلند شد و چفت پشت در را برداشت. در را که باز کرد، هفته مرد را دید. آنها ظاهری متفاوت از هم داشتند. از های مختلف بودند و چهرههاشان حالت مشخصی داشت که در هر نقط از دنیا هم دیده می شدند، باز می شد فهمید که پسران سرهنگ آرلیان و هستند. آنها با شنیدن خبر برگزاری مراسم جشن بین اینکه همدیگر را بشناسند از گوشه و کنار اطراف طالاب راه افتاده بودند و برای شرکت در مراسم تودیع پدرشان به ماکنده آمده بودند. نام همه آنها آوریانه بود و نام خانوادگی مادرهای خود را به اسمشان اضافه کرده بودند. سه روزی که در خانه پدریشان اقامت کردند موجب شادی ارسولا، و مایه دلخوری فرناندا شد خانه را به میدان جنگ تبدیل کرده بودند در این مدت آمارانتا هم به دنبال دفترچه قدیمی میگشت که ارسلا مشخصات آنها را به همراه تاریخ نامگذاری و غسل تعمیدشان آن نوشته بود بعد از پیدا شدن دفترچه نشانی فعلی هر کدام را به مشخصاتشان اضافه کرد فهرست بلند بالایی شده بود که به تنهایی می توانست بنوان بیوگرافی مختصری برای تشریح وقای 20 ساله جنگ به کار رود. حتی از روی می شد خط سیر حرکت سرهنگ آرلیان و را از روزی که او به همراه 21 نفر از همراهان خود ماکندو را به قصد جنگ ترک کرد تا روزی که او را پیچیده در پتوی خونین به ماکندو بازگردانده بودند به خوبی نشان داد. آرلیان سگوندو فرصت را از دست نداد و مهمانی مفصلی به افتخار عموزاده های پدرش را انداخت که تیان شامپاین مانند سیل جاری بود. قرار شد نواخته شدن آکاردون با صدای باز کردن در بطری شامپاین همراه هم راه باشد که بعدها آن را به عنوان جبران کننده در ماجرای کارنوال خونین تعبیر کردند که در اثر آغاز مراسم دولتی از رونق افتاده و ناتمام مانده بود در طول جشن مهمانان بیش از نیمی از ظروف چینی و کریستالی را خورد کردند وقتی گاوی را در حیات خانه به منظور اخت کردن دنبال می کردند، قسمت اعظم گلهای روز باغچه زیر دست و پا له شد تعداد زیادی از مرغ و خروس را با شلیک گلوله کشتند آمارانتا را وادار کردند تا با نوای والس قماور پیتروکرسپی برخصد. رمدیوس خوشگله مجبور شد شلواری مردانه به پاکند و از تیرکی بلند بالا برود. در سالن غذاخوری هم بدن خوکی را رو روغم مالیدند و رهایش کردند که موجب اعتراض فرناندا شد. هیچ کس از این همه خرابکاری متاسف نشد چرا که خانه مالامال از ثروت و خوشی بود. سرهنگ آرلیان و بو که در ابتدا با شک و تردید آنها را پذیرفته بود و مطمئن نبود که پسرانش هستند از دیوان بازی آنها خوشش آمد و پیش از آن که به محل زندگیشان برگردند به هر کدام یک ماهی تلایی کوچک یادگاری داد خوز کادیو سگندو هم که تقریبا از همه بریده و در لاک خودش فرو رفته بود به خاطر آنها مسابقه میان خروسهای جنگی در بعد از زهران روز ترتیب داد. که چیزی نمانده بود به کتککاری ختم شود جریان از این قرار بود که تعدادی از پسران سرهنگ آرلیان و به به ترفندهای مسابقه خروس ها آشنا بودند و در نتیجه خیلی زود توانستند مشت پدر روحانی آنتونیو ایزابل را باز کنند آرلیان و سگندو علاوه بر آن مهمانی پرریخت و پاش چون ثروت زیادی داشت و در پول غلت میزد به خیشاوندان نیمه دیوانش پیشنهاد کرد تا در صورت تمایل بمانند و برایش کار کنند از میان آنها تنها کسی که پیشنهادش را پذیرفت آرلیان و تریسته بود او مردی دورگه بود با پوستی تیره و هیکلی درشت که مانند خوزارکادی و با انگیزه زیادی برای سیر و سیاحت و اکتشاف داشت و تا کنون شانس خود را در بیش از نیمی از دنیا امتحان کرده بود برایش فرقی نداشت که در کجا زندگی میکند. بقیه آنها هم گرچه هنوز مجرد محسوب می شدند، اما به عاقبت خود خوشبین بودند. همگی مردان کارازموده و صنعتگران ماهر و مردان خانه و خانواده و صلح دوست بودند. روز چهارشنبه عبادت یا همان چهارشنبه خاکستر، پیش از اینکه پخش و پلا بشوند و هر کدام به محل زندگی خود برگردند، آمارانتو وادارشان کرد لباس مخصوص روز عبادت را بتن کنند و همراه او به کلیسا بروند. آنها نه برای دعا و نیایش که بیشتر برای کنچکاوی و تفریح بود که جلوی مهراب کلیسا صف کشیدند. پدر روحانی آنتونیا ایزابل انگشت شست خود را به خاکستر مالید و بر پیشانی هر یک از آنها نشان صلیب کشید. پس از پایان مراسم مذهبی و برگشتن به خانه وقتی جوانترین آنها سعی کرد نشان صلیب خاکستری را از روی پیشانی خودش و برادرانش پاک کند متوجه شد که آن نشان پاک نمی شود. ابتدا با آب و صابون پیشانیشان را شستند اما پاک نشد. این بار به پیشانی هم خاک مالیدند و با برس سابیدند اما باز هم از بین نرفت. دست آخر از سنگ پا و قلیاب صابون استفاده کردند، اما نتوانستند لکه خاکستری صلیب را رو از روی پیشانیشان پاک کنند. این در حالی بود که آمارانتا و دیگران که آن روز به کلیسا رفته بودند و نشان صلیب را دریافت کرده بودند بدون هیچ اشکالی آن را رو از روی پیشانیشان پاک کردند. اورسلا در زمان خداحافظی و بدرقیان ها گفت: «نینجوری بهتره از این به بعد هرکی این علامت رو پیشونیتون ببینه، فوری میفهمه که کی هستین آنها ماکندو را در حالی ترک کردند که دسته این موزیسیان پیش آنها حرکت میکرد و مارش نظامی مینواخت مردم شهر پشت سرشان آتشبازی به راه انداخته بودند آنها این ایده را در میان مردم ماکندو باقی گذاشتند که خاندان بوندیا آنقدر تخم و ترکه در نقاط مختلف دنیا پخش کرده است که تا قرنها نسلشان باقی خواهد ماند آرلیانو تریسته با نشان صلیبی که بر پیشانی داشت در ماکنده ماند او در هاشیه شهر یک کارخانه تولید یخ تأسیس کرد که پدر بزرگش خوز آرکادی و در دوران سرساماور اختراهایش رؤیای آن را دیده بود آرریان تریسته چند ماه پس از اقامت در ما کندو و پس از اینکه برای خودش کسی شد مردی خوش مشرب شده بود و مورد احترام و محبت مردم قرار می گرفت. او به فکر خریدن خانه افتاد که بتواند مادر و خواهر مجردش را به آنجا بیاورد. در این میان چشمش به خانه بزرگی واقع در گوشه از میدان اصلی شهر افتاده بود که متروک به نظر میرسید. وقتی در باره پرسجو کرد تا بفهمد به چه کسی تعلق دارد، دو گفتند که خانه صاحب ندارد و در زمانهای گذشته زنی بیوه در آنجا زندگی می‌کرد که خاک و گچ دیوارها را می‌خورد. آنطور که آنها می تنها یک بار و آن هم در سن پیری او را دیدند، آن هم در حالی که کلاهی با گلهای ریز به سر داشته و یک جفت کفش نقره‌ای رنگ به پایش بوده. او را در میدان شهر دیده بودند که به پستخانه میرفته تا نامهای برای اسقف اعظم ارسال کند. به آرولیانو و تریسته گفتند که تنها همدم او کلفتی سنگ دل بوده که سگ ها یا گربه ها و یا هر حیوان دیگری را که وارد خانه میشد با بیرحمی میکششته و جسد تکه تکه شدهش را به خیابان پرت میکرد تا مردم را با بوی لاشیان عذیت کند. از آخرین لاشه، که مربوط به سالهای پیش از پایان جنگ داخلی بود زمان زیادی گذشته بود و پوست حیوان در اثر تابش نور آفتاب کباب شده بود با این پیرزن و کلفتش باید خیلی قبل تر از آن مرده باشند دلیل سرپا ماندن خانه این بود که در سالهای اخیر دو زمستان سخت و باد و باران شدیدی به خود ندیده بود لولاهای در و ها زنگ زده بودند و تنها به وسیله انبوه تارهای در همتنیده انکبوتها بر جای خود مانده بودند پنجره های اتاقها کماکان بسته بودند و بوی نا و میدادند. می دادند. کف حیات ترک ترک شده بود و همه را خزه و علف های حرز پوشانده بود در میان شکاف دیوارها مارمولک ها و حشرات موزی لانه و تخم گذاری کرده بودند همه ی این موارد نشاندهنده این بود که دستکم بیش از نیم قرن میشد که هیچ انسانی در آنجا نزیسته بود. آرلیان و تریسته که مرد عمل و اقدامات آنی بود نیازی به تعیید این یافته ها نداشت تا قدم جلو بگذارد. بنابراین بدون مقدمه به آن خانه رفت و با فشار شانه در موریان خورده را از جایش کند. در بر لایه از لانه های موریانه افتاد و گرد و خاک قلیزی به هوا بلند شد. او برای لحظه ای جلوی در حیات ایستاد تا گرد و خاک بخوابد. پس از صاف شدن هوا بود که همان پیرزن کریه را دید که توصیفش را قبلتر شنیده بود. او در لباس های نیم قرن گذشته با جمجمه‌ای برهنه که تنها چند تار موی زرد روی آن دیده میشد. و با چشمانی درشت که هنوز هم زیبایی خود را حفظ کرده بودند ولی آخرین ستاره های امید در آنها افول کرده بود در حالی که پوست صورتش در اثر سالها تنهایی چروکیده شده بود روبروی او ایستاده بود بدنش به لرزه افتاد آریان تریسته به زحمت توانست تشخیص بدد که پیرزن لوله یک تپانچه قدیمی را به سوی او نشان رفته گفت اجازهات میخوام کردم کسی اینجا زندگی نمیکنه. پیرزن کماکان بی حرکت و بدون گفتن کلامی تپانچه به دست ایستاده بود. او از ورای گرد و خاک شبیه عروسکی زیبا ولی کمبه ها جلوه می کرد. پیرزن از پس قبار مرد قول پیکر چهار را با علامت صلیبی بر پیشانی در مقابل خود دید. او را به دقت ورانداز کرد. و گویی از میان قبار کسی را در گذشته دور می‌دید که با تفنگ دلول شکاری بردوش و لاشه چند خرگوش در دست آنجا ایستاده. با صدای ملایمی گفت خدای من، آبادلانه نیست که خاطرات گذشته زنده بشه. آریانو تریسته که از بهد زدگی بیرون آمده بود گفت من برای اجاره خونه اومدم. این بار پیرزن با تصمیمی قاطع لوله تپانچه را به صلیب روی پیشانی او نشانه رفت و با عزمی راسخ آماده شلیک شد و با لحن محکمی بر سر او داد کشید از اینجا بارا بیرون آنشب سر میز قضا آرلیان تریسته ماجرای پیش آمده را برای حاضرین تعریف کرد ارسولا با شنیدن آن دچار قم و اندوه شد و گریهش گرفت سرش را میان دستانش گرفت و گفت خ... خدایا اون اون هنوزم زنده است پیشامدهای ناگوار زندگی گذشت زمان وقوع جنگ ها و بیشمار روزمره موجب شده بود تا روکا را به کلی فراموش کند در میان آنها تنها کسی که دقیقه ای فکر ربکا از ذهنش بیرون نرفته بود امارانتای کینتوز پیر بود. وقتی که صبح ها از بستر سرد و یخصده تنهاییش برمیخواست به او فکش میکرد. زمانی که پستانهای چروکی را با صابون میشست به او فکش میکرد. وقتی به شکم لاغر خود دست میکشید به یاد او می‌افتاد. هنگامی که لباسهای قدیمیش را میپوشید به او میاندیشید. هر وقت بند دوران پیری را به می کرد فکرش به سوی او بود هر موقع باند سیاه رنگ روی زخمش را عوض میکرد کرد ربکا با او و در خاطرش بود همیشه و در هر لحظه در خواب و بیداری در خوشیها و ناخوشیها امرانتا در فکر ربکا بود چرا که احساس تنهایی خاطرات را در ذهن او از هم تفکیک کرده بود محبت و دلتنگی انباشته شده در قلب او را سوزانده و از بین برده بود و برعکس خاطرات تلخ را بزرگتر و واضحتر و همیشگی کرده بود رمیدیوس خوشکله از زبان او شنیده بود که ربکا هنوز زنده است آمارانتا هر موقع به اتفاق او از جلوی آن خانه مطروک عبور می کردند شروع به بدگویی از ربکا میکرد تا رمدیوس خوشگله را در کینه و نفرات درونیش با خود کند. می کند. میخواست او را علیه ربکا بشوراند و از او هیولایی بسازد که رمدیوس خوشگله تا عبد از او متنفر باشد. اما در این کار ناکام ماند. رمدیوس خوشگله از هر گونه احساس عاشقانه مبرا بود به خصوص احساسات دیگران. ورسولا که برخلاف آمارانتا از دست عوامل دیگری رنج کشیده بود، ذهنش نسبت به ربکا آری از هر نوع آلودگی بود. او را به صورت دختربچه‌ی بیکس و کاری به یاد می‌آورد، کم‌راه یک توبره محتوی استخوانهای پدر و مادرش و با یک چمدان کوچک به خانه‌ی آنها آورده شده بود. در طی چند سال توانسته بود بر همه موانعی که از پذیرفته شدن او به‌عنوان عضوی از خانواده جلوگیری میکرد پیروز شود. آرلیانو و سگندو با خود فکر کرد که خانوادش را مجبور کند که بار دیگر ربکا را به جمعشان راه بدهند و از او مراقبت کنند که این پیشنهاد با مخالفت شدید ربکا مواجه شد. این همه سال در تنهای زیستن برای ربکا بس نبود و سالیان دراز دیگری هم باید مانند جغد زندگی می کرد تا روحش به مزایای تنهایی دست پیدا کند. و مایل نبود آرامش سالهای پیری را با رفتن بان خانه از دست بدهد. در ماه فوریه شانزده پسر سرهنگ آرلیان بو با نشان صلیب خاکستری روی پیشانی به شهر ماکوندو برگشتند. آرلیان تریسته در میان جشن و سرور ماجرای خانه ربکا را برایشان تعریف کرد. آنها هم در نیمی از روز خانه را تعمیر و بازسازی سازی کردند. درها و پنجره ها رو عوض کردند نمای جلوی خانه را با رنگ های زیبای رنگ زدند دیوارهای خانه را استحکام بخشیدند کف حیات را با سیمان تازه پوشاندند، اما اجازه نداشتند تغییری در داخل خانه بدهند. ربکا حتی تا کنار در هم نیامد و به آنها فرصت داد تا تعمیرات دیوانوار خود را انجام دهند پس از پایان کار کلفت پیرش آرخنیدا را که هنوز هم با او مانده بود با یک مشت سکه پیش آنها فرستاد ولی خبر نداشت که سکه ها از زمان پایان آخرین جنگ دیگر ارزشی ندارند تازه آن موقع بود که آنها پی بردند او چه فاصله هولناکی با دنیای واقعیت ها دارد تا جایی که نجات او از آن عالم تنهایی تا آخر عمرش غیر ممکن است بعد از دومین دیدار دست جمعی پسران سرهنگ آرلیانو و بویندیا از شهر ما کندو، یکی دیگر از آنها به نام آرلیانو سنتنو در آنجا مندگار شد تا در کنار برادرش آرلیانو و کار کند. او یکی از اولین پسران سرهنگ آرلیانو و بویندیا بود که برای نامگذاری به خانه آنها آورده شد و ارسلا و آمارانتا او را به خوبی به یاد داشتند. چرا که در طی چند روز اقامت اولیهاش هر چیز شکستنی که به دستش میرسید خرد میکرد گذر زمان او را از آن تب و تاب اولیه انداخته بود و تبدیل به مردی ملایم با قدی متوسط کرده بود جای آثار عابله بر روی صورتش هنوز به چشم میخورد و قدرت شکستن کماکان در او باقی مانده بود به اینکه دستش به بشخابها بخورد آن تعداد از آنها را شکسته بود که فرناندا متوجه شد چیزی نمانده تا آخرین قطعات سرویس چینی گرانبههایش هم خورد شود. بنابراین تصمیم گرفت یک دست جروف فلزی لعابی برای او بخرد که آنها هم چندان دوامی نیاوردند و همهشان کج و کوله شدند. او در مقابل نیروی ویرانگرش که حتی برای خود او هم ناراحت کننده بود، نوعی صمیمیت و مهربانی باطنی در خود داشت که بلا بلافاصله اعتماد و محبت دیگران را به سوی خود جلب کرد. علاوه بر ظرفیت فراوانی که برای کار جسمانی داشت، توانایی ذاتی او در مدت کمی که همکاری با برادرش میگذشت، تولید یخ را آنقدر بالا برد که فراتر از میزان مصرف شهر شد. اورلیانو تریسته به فکر افتاد تا صنعت خود را به دیگر شهرهای حاشیه تالاب توسعه دد. در همین زمان بود که او فکر کرد نه تنها حرفه را به روز کند، بلکه شهر ماکوندو را با دیگر نقاط دنیا مرتبط سازد. او گفت: "باید به ماکوندو راه آهن بکشیم." این اولین باری بود که کلمه راه آهن در شهر ماکندو شنیده میشد. اورسولا با دیدن نقشه خطوط راه آهن که نوهش روی میز پهن کرده بود به یاد نقشه خوز کادیو و با پروژه با زرربین های درشت افتاد و نظر پیشین خودش را تایید کرد که تاریخ دارد تکرار می شود. اما آرلیان تریسته برخلاف خوز آرکادی کادیو خواب و خوراکش باز ماند و نه با کسی بدخلقی کرد. در عوض، با فکری بکر به پروژه چسبید و سریع ترین راه دستیابی به آن را در نظر گرفت. در مورد مخارج و تاریخ شروع و پایان آن هم برآوردی نسبی کرد و بدون ایجاد ناراحتی و اوقات تلخی به کارهای لازم پرداخت. آرولیان سگوندو اگر خصوصیتی را از خوز ارکادی و با به برده بود، آن خصوصیت بیشک بی نسبت به شکست بود. همان خصوصیتی که سرهنگ آورلیان بوئندیا آن را کم داشت. بنابراین همان گونه که برای پروژه کشتیرانی برادرش پول داده بود بودجه لازم را هم در اختیار آورلیان تریسته قرار داد تا نسبت به پروژه کشیدن ریل راه آهن اقدام کند. آورلیان و تریسته با در اختیار داشتن بودجه لازم و با مراجعه به تقویم چهارشنبه آینده را انتخاب کرد و با این نیت از آنجا حرکت کرد که تا پس از پایان فصل بارندگی بازگردد مسئولیت اداره کارخانه یخسازی را به آرلیان و سگندو سپورت اما برای مدتی هیچ خبری از او نرسید آرلیان و سگندو سخت به کار تولید یخ پرداخت این بار ابتکاری به خرج داد و تصمیم گرفت به جای استفاده از آب برای تولید یخ از آب میوه استفاده کند بدین طریق بدون این که نیت قبلی داشته باشد موفق به یافتن مقدمات اختراع بستنی شد از طرفی چون فصل بارندگی گذشته بود و هیچ خبری از آرلیان و تریسته نرسیده بود تصمیم گرفت تغییراتی در تولید محصولشان بدهد که گمان می‌کرد تنها از فکر بکر خودش است تا اینکه در آغاز زمستان بعدی زنی از اهالی شهر که در کنار رودخانه مشغول رخت شوی بود ناگهان فریاد زنان در خیابان اصلی شهر دیده شد. او به سرعت میدوید و بریده بریده حرفی را تکرار می‌کرد. داره میاد، داره میاد، یه چیز وحشتناک، داره میاد، مثل آشپزخونه یکی یه ده دهکدارو دنبال خودش بکشه، داره میاد، داره میاد. درست در این لحظه بود که شهر از نفیل صوت بخاردار و انعکاس وحشتناک آن صدا به خود لرزید. در طول ماههای گذشته آنها گروهی از کارگران را دیده بودند که ریل‌های آهنی را روی زمین قرار می‌دهند اما چندان توجهی نمی‌کردند چرا که میپنداشتند این کارها هم از همان دوز و کلک‌های های دورگرد است و معلوم نیست این بار می‌خواهند چه چیزی از اختراعات حکما اورشلیم را نمایش بدهند اما پس از اینکه توانستند بر ترس و وحشتشان از آن صدای گوشخراش و هولناک غلبه کنند همه از کوچک و بزرگ و زن و مرد به خیابان‌ها ریختند تا ببینند این بار چه شده است و چشمشان به آرلیان و تریسته افتاد که از روی لوکوموتیو برای آنها دست تکان می‌دهد متوجه شدند این همان قطار راه آهن غرق در دسته های گل است که پس از هشت ماه وارد شهرشان شده همان قطار زرد رنگی که آن همه ابهام و تردید همه آن لحظات خوش و ناخوشایند آن همه تغییرات و مصیبت‌ها و در نهایت حس وطن پرستی را با خود به ما آورده بود.